فرا رسید و همراه با آن میهمان ها هم از راه رسیدند جلوی در سالن درجه دار فلد و ولهایدنهایمر پشت میز از که از تنها کشوی آن برای دهخت استفاده میشد نشسته بود. مقابل او صفی از افسران که تا جلوی مدرسه ادامه داشت دیده میشد بهای بلیت ورودی پنجاه مارک بود افسران پس از پرداخت ورودی معمولا به طرف سالن ورزش که به سالن غذاخوری تبدیل شده بود میرفتند. و در آنجا با خانم های بین 20 تا 50 ساله که اونیفرم مخصوصی تن داشتند ملاقات می کردند. بعضی از این خاومها به تازگی از پایایی سربازی استخدام شده بودند. اما بیشتر آنها را از مناطق مختلف آلمان و اروپا آورده بودند. و همه آنها پیش از آن که به خدمت دولت درآیند خیابان گرد ای بودند. معمول افسران پس از آشنا شدن و انتخاب طرف خود، برای صرف غذا و مشروب که به بهای گذافی سرو می در سالن غذاخوری جمع می شدند. پس از غذا برنامه کابار شروع می شد. هنرمندان این گونه برنامه ها زنانی بودند که به هنرمندان جبه شهرت داشتند. و تنها هنرشان خواندن آوازهای عاشقانه و اجرای رقصهای آنچنانی بود که با تشویق و تحسین مشتریان همراه میشد. خوشگذرانی بی و ساده نشاده برتر در پایان برنامه مردان و زنان دست در دست به طبقه دوم می رفتند. طبقه دوم محل تشکیل کلاس های درس بود که به اتاقک تقسیم شده بودند. هر اتاقک فقط گنجایش یک تخت سفری، یک میز کوچک، یک صندلی و یک پارچ آب را داشت. هیچیک از اتاقک ها به هوای آزاد راه نداشت و به همین خاطر بوی گند همه جا را پر کرده بود. افسران معمولاً بیش از دو ساعت نمی‌ماندند. توقف بیشتر مستلزم پرداخت پول بیشتر بود. تنها معدودی از افسران از عهده پرداخت هزینه یک شب کامل برمیآمدند. نیازی به گفتن نیست که مشتریان پراپا قرص اشرت کرده را افسران یگانهای ترابری و مخابرات تشکیل می‌دادند. گاه افسرانی هم از خطوط مقدم جبهه سری به آنجا می‌زدند. اما تعدادشان زیاد نبود و بسیار دیر به دیر پیدایشان می‌شد. آنها با ونی فرم های مندرس بدون اینکه غذایی بخورند دست یکی از خانم ها را میگرفتند و در پیچ و خم پله ناپدید می شدند. من شارکوف و گنار شبها کت سفیدی می پوشیدیم و پیش خدمتی می کردیم. روزها پادوی آشپزخانه بودیم و در فرصتی که دست میداد می زدیم به چاک و در بازار سیاه به داد و ستت مشغول می شدیم. ظرف دو هفته اول من به تنهایی دو هزار مار پول گیرم آمد. و کلی هم غذا و کنسرو برای مادرم فرستادم. با وجود آنکه روز اول تنبیه شدیم ولی بعد از چندی سروان با ما مهربان شد و خلاصه از نظر رفاهی زندگی بسیار خوبی داشتیم. گهگاه مزاحمت هایی پیش می آمد که مجبور می شدیم از دژبان کمک بگیریم. برای مثال یک بار سرگرد میانسالی نیمه های شب توی راه پله مزاحم یکی از خانم ها شده بود. و یک بار هم اددهی چترباز مثل مور و ملخ ریختن توی ساختمان و نه تنها مهمانها را بیرون کردند برکه ما را هم در زیر زمین زندانی کردند و به این ترتیب یک شب تا صبح اشرت را قراخ کردند. همدهی چتربازان آنقدر غافل گیر کننده بود که از دشوانها هم کاری ساخته نبود. بومبفکنهای متفقین هم درد سر دیگری بودند. در آغاز ماه نوامبر آتش توبخانه متفقین به هر مرج اوزا افزود، برق قد شده بود و ما مجبور بودیم شم روشن کنیم. خانمهایی که در اتاقک های طبقه یک طبقه بالاتر از اتاقک آنچنانی زندگی می کردند، به زودی از ترس بمب‌ها ها به زیر ساختمان نقد مکان کردند. به جز این موارد جنب جوش چندانی به چشم نمی‌خورد. گهگاه گروه های زربت رودخانه ر رو و به شستی به ها نشان میدادند ترس و خطر از خطر عمدتا از بمب ها ناشی میشد از لیبراتورهای بی 17 و بی 24 نمی ترسیدیم چون صدای آنها را از فاصله دور میشنیدیم به محض که پنجره ها شروع به لرزیدن میکرد با شتاب به طرف پناهگاه میدویدیم اما بمب های لایتنینگ، ماستنگ و تاندربولت به طور غیرمنتظری از آسمان آرام شیرجه میآمدند و هر در سر راه خود میدیدند هدف قرار میدادند های مکرر آنها همه را وحشت زده کرده بود یک روز صدای عجیبی شنیدیم انگار هواپیمایی با سرعتی ده برابر سرعت معمول از بالای سرمان رد شد موقعی که یک اسکادران از جنگندههای آمریکایی بالای دورن به پرواز در میآمد ناگهان این صدای عجیب هم شنیده میشد و با انفجار گلوله های توپ یکی دوتا از هواپیماهای دشمن در هوا متلاشی میشد و سقوط میکرد پس از مدتی دریافتیم که این صدا مربوط به جدهای جنگنده مودل M.E. 262 آلمانی است که اسکادران آنها در 160 کیلومتری مستقر شده بود. از عواست نوامبر به بعد شبهای دورن پر از جنب و شده بود. سنگینی ترافیک از قرب به شرق تغییر جهت داده بود و به نظر می رسید که همه چیز در جهت عکس خود جریان دارد. در طول شب جاده هم باشته از نفرات و خودروهای سلاح سنگین بود. که به سمت جنوب غربی در حرکت بودند. آنها شب را در دورن اعتراض میکردند و ما برای جلوگیری از هر گونه پیش سویی شبها مجبور بودیم اعلان بزرگی به در مدرسه نصب کنیم که روی آن نوشته شده بود: ظرفیت تکمیل. جابجایی افراد نظامی مثل بیشتر فعالیت های آنها غیر قابل پیش بینی بود. شب های اول خیلی تعجب میکردیم اما کم کم همه چیز عادی شد و با توجه به اینکه ترافیک هر شب سنگین و سنگین تر میشد دیگر توجه ما را به خود جلب نمیکرد سربازان معمولا سربازان اس اس بودند که بیش از سه یا چهار سال از ما بزرگتر نبودند این وضعیت سر, سر نوامبر و اوایل دسامبر ادامه داشت روزی در اوایل دسامبر مرا برای تهیهٔ شم فرستاده بودند هنوز ده دقیقه نگذشته بود که صدای زوزهٔ هواپیمایی به گوشم رسید بیدرنگ به درون خراب که در کنار راه بود شیرجه رفتم. طبق معمول داشت بزن بزن شروع می هواپیماها هواپیما ها پشت سر هم از راه می رسیدند. شدت سر و صدای انفجار به حدی بود که صدای موتورشان محو شده بود. جنگنده های لیبراتور در راه بودند. کمی بعد بمباران سراسری شروع شد. من وسط خانه بمباران شده ای که تیر و تخته های آن روی هم انباشته شده بود نشستم. در نتیجه خطر ماندن زیر آوار منتفی شد. برق هواپیماهای B24 بی را در آسمان بالای سرم دیدم و متعاقب آن اشیای کوچکی از بدنه هواپیما جدا شدند. خودم را جمع و جور کردم و چون کلا خودم را در مدرسه جا گذاشته بودم، سرم را بین باسنانم پنهان کردم. همه چیز طبق برنامه انجام شد. آنها بمباران را از منطقه‌ای غربی شهر شروع کردند و در شرق خاتمه دادند. به طور منظم پوششی از بمب مناطق غرب و شرق را در بر گرفت و موجی پس از موج دیگر بومباران از سر گرفته میشد. شد. از خاک و قلب سنگ دورو بر من به هوا رفت و تقریباً به طور کامل مرا را در بر گرفت. حنگامی که اولین موج گذشت از زیر قلب سنگ ها بیرون آمدم و خود را برای موج حمله بعدی آماده کردم. در موضع کنونی احساس نام نمیکردم. به همین خاطر خودم را عقب کشیدم و پشت باقی ی دیواری که حدود یک متر ارتفاع داشت، موضع گرفتم. ناگهان دوباره همه چیز شروع شد. سفیر بمبها ها نوای انتقام را سر و من بار دیگر پشت دیوار کوتاه آجاری دراز کش کردم. آن لحظات دعا می کردم که جان سالم به در ببرم. ناگهان بمبی در نزدیکی من منفجر شد. و من و دیوار را با هم از جا کند و ماکم به زمین کوبید. در حالی که از شدت ترس کنترلم را از دست داده بودم، از جا بلند شدم و سعی کردم هر طور شده از زیر هجوم مرگبار هواپیماها فرار کنم. ظف چند ثانیه مثل پرکاهی به هوا بلند شده و دوباره مانند تکه سنگی به زمین افتادم. درد مختصری در ران راستم احساس کردم. اما هنوز چیزی نگذشته بود که انفجار دیگری مرا از جا کند و به شدت به سمت عقب پرتاب کرد. سرانجام پس از آنکه تا علیه شرق منطقه که محل ما در آنجا بود، زیر پوشش بومبفکن ها قرار گرفت، گرد و خاک فرونش است. و صدای انفجار کاسته شد. سعی کردم سر پا اما دردی که در ران راستم بود مرا به خدا ورد. وقتی به پای راستم نگاه کردم، دیدم قرق خون است لنگ لنگان خودم رو به جاده رساندم و از یکی از رهگذران نزدیکترین پست کمک‌های اولیه را گرفتم. نگاهی به من انداخت و گفت همینجا بنشین و بدون اینکه حیاهویی راه بیاندازد، با شلوارم را پاره کرد. قسمتی از زخم را که خون غریزی از آن بیرون می‌آمد پاک کرد و آن را با نوار زخم‌بندی که در جیب یونیفرمش داشت بست. سپس مرا کول کرد و گفت نگران نباش بزارم ترتیبش را می‌دهیم. احساس گیجی میکردم و در عین حال تحت تأثیر بمباران شکه شده بودم او مرا در پناه خرابه ها و خانههایی که هنوز سر پا بودند با خود می بارد. باید احتیاط می زیرا هیچ کس نمیدانست که هواپیماها چه وقت حمله میکنند. آنها ناگهان از راه میرسیدند و در حالی که از سلاحهایشان آتش میبارید با همان سرعتی که آمده بودند نابدید می شدند. مرا به بیمارستانی که در طبقه اول وزیرزمین مدرسه ای برپا شده بود برد. مجروحان مثل ساردین در کلاس ها و راهروهای مدرسه کنار هم ردیف شده بودند. بعضی روی تخت های دو طبقه و بعضی روی برانکارهایی که با آن به بیمارستان حمل شده بودند، دراز کشیده بودند. بعضیها به مرده ها بیشتر شباهت داشتند تا به زندهها. بعضی نگاه نمی کردند. زیرا چهره را آتش شعله افکن سوزانده و محو کرده بود. بعضی از آنها خوابیده بودند و بعضی واقعا مرده بودند. ادهی ناله می کردند و در آن میان کسانی هم بودند که از فرت درد فریاد می و یا گریه می کردند. خیلی ها ساکت بودند اما در آنجا هیچ کس نمی خندید. حتی لبخند هم بر لب کسی دیده نمی شود. شاید اثری از نیش خند و لبان خستهی ظاهر می شد. تلخاکوتا. کشیشها سعی میکردند روح مردانی را نجات دهند که موجودیت آن را از یاد برده بودند. بعضی اوقات می‌کوشیدند جاودانگی روح را یادآوری کنند، اما گوی خود از یاد برده بودند که پس از ورشو، استارینگراد و فالس ارواح هم مردند. آنان که زنده مانده بودند، بیشتر به یک ماشین جاندار شباهت داشتند. ماشینی که تنها یک جمله در حافظه داشت و آن را مانند ی خط افتاده‌ای تکرار میکرد. مقاومت کن به جنگ تا زنده بمانی در این جمله احساسات بشری یافت نمی شد. تنها غریزه بود که به ادامه حیات فرمان میداد و این ماشین را به پیش می رند نفسها، فریادها، دعاها، نجواها و رؤیاها همه و همه گویای این عبارت بود مقاومت کن به جنگ تا زنده بمانی و وقتی این نفس کشیدنها، فریادها نجواها و رؤیاها پایان میگرفت آن شخص مرده بود داروی بیهوشی در کار نبود و وقتی روی تخت جراحی دراز کشیدم داد و فقان من هم به فریادهایی که از کلاسها و راه باریک شنیده میشد، افزوده شد در حالی که دو پرستار مرد محکم مرا روی تخت جراحی نگه داشته بودند پزشک و پرستاری که سخت خسته به نظر می رسیدند ترکش کوچکی را از پای راستم بیرون آ پرستار گفت: نگران نباش، حالت خوب میشه. هایم را نوازش کرد و گفت: مامانت کجاست؟ مادرم در مونیخه. میتونید به اون خبر بدید که به اینجا بیاد؟ نه، پسرم نمیتونیم مادرت بهتره همونجا بمونه. ما تو رو به شونخائیم فرستاد. میتونم به خونه برگردم؟ راست میگید؟ فقط حرف نیست. نه. به محض اینکه سر پا بیستی طور به خونه برمیگردونی اشک از چشمم سرازیر شد اشک شوق و میتوانستم به خانه برگردم پس از جراحی مرا روی برانكار خواباندند و در گوشهای کنار چند سرباز مجروح قرار دادند سلام از کجا اومدی راهتو گم کردی غذای بیمارستان چندان بد نبود با این حال، چون مقداری پول همراه داشتم، می توانستم چیزهای دیگری هم از بازار آزاد بخرم. روز دوم اولین گروه ملاقات کننده به سراغم آمدند. اول شالکوف و گونار و بعد سروانکنینگر و فل و هایدنهایمر. آنها مقدار زیادی غذا و چند پاکت سیگار برای آوردند در آن موقع سیگار ارزش زیادی داشت و حکم پول را پیدا کرده بود. معتبرتر از هر پولی که تا آن زمان می شناختم. گنار آخرین اخبار را برایم گفت. روزی یکی از افسران برای خوشگذرانی به اشترتکتده میآید. همینطور که دور را دید میزند ناگه چشمش به دخترش میافتد. هر دو هم در خود فرو میروند و بعد دست در دست یکدیگر مدرسه را ترک میکن. پدر از خیر خوشگذرانی میگذرد و دختر از انجام کاری که به خاطر آن عجیر شده بود معاف می شود. گنار طوری داستان را تعریف کرد که به راستی خیلی عجیب و در این حال مسخره جلوه میکرد کرد. گنار و شارکوف بعد از رفتن افسران هم پیش من ماندند. شارکوف گفت، این دورو برای اتفاقات عجیب و غریبی در حال وقوعه. یک ماه یا بیشتره که همه نو خودرو، تانک و سرباز از این شهر عبور میکنه و همه هم در مسیر جنوب غربی در حرکتند. گونار گفت، شاید دوباره حمله ای در پیشه یکی از سربازان تانک که های ما رو میشنید گفت حمله؟ با چی؟ گونار گفت راستی چند تا ملاقاتی داری که اونا رو نمی سلام کوچولو. حالت چطوره؟ ستا از خانم ها به نام های لیزا، هرمینه و گرترود وارد شدند لیزا حدود بیستا و هرمینه و گرترود حدود 50 سال داشتند خب جونی؟ بگو ببینم خوش میگذره؟ آنها هم برایم غذا آورده بودند گفتگوی ما خیلی زود ته کشید چون مطلب زیادی برای گفتن نداشتیم وقتی بلند شدند که بروند هرمینه برای یک لحظه برگشت خم شد و بسته کوچکی به من داد هر وقت نیاز به کمک داری فقط دعا بخون این را گفت و به سرعت خودش را به دوستانش رساند بسته را باز کردم داخل آن یک سلیب کوچک طلا با زنجیر بود پشت سلیب این جمله کنده شده بود هرمینه 1914 گوشا كنایهی سربازان درباره خانم ها طوری ناراحتم کرد که برای فرار از آن وضع قول دادم که هر طور شده یک شب دست خانم ها را توی ها بگذارم روز سوم طبق معمول دکتر دیدنم آمد زخم پایم را معاینه کرد و درست قبل از رفتن برگشت و جعبه سیاه کوچکی را از جیبش درآورد. بفرمایید. شما استحقاق آن را دارید. جعبه را باز کردم. داخل جعبه مدال فروندتن آپتیسیشن قرار داشت که به کسانی تعلق می‌گرفت که برای اولین بار مجروح شده بودند. کت نظامیم را به سرعت از پشت برانکار برداشتم و با دست های لرزان اولین مدال را روی آن نصب کردم. یکی از سربازها گفت امیدوارم موقعی که نوبت مدال نقره ای تو برسه جنگ تموم شده باشه شانزدهم دسامبر سال 1944 را به دلایل گوناگون به یاد دارم ساعت حدود پنج صبح بود که از خواب بیدار شدیم نظر نمی نمیرسید. از بیرون صدای رفت و آمد خودروهای سنگین قرش شنی تانگ ها خودروهای مهمات بر فرمان های مقطع نظامی شنیده میشد به علاوه صدای دیگری شبیه صدای موتور جت که قبلا هم شنیده بودم به گوش می رسید. سربازی که این هواپیما ها را دیده بود گفت این ویوان است: اگرچه پایم هنوز درد می کرد اما می توانستم راه بروم خودم را به طرف پنجره‌ای که تخت کوبی شده کشاندم. بیرون برف سنگی بارید و ستون خود را زیر بارش شدید برف به سرعت در حرکت بودند از میان دانه های برف معلق در آسمان نور سرخ فام راکت های ویوان دیده می‌شد. سپیده از طرف مشرق در حال دمیدن بود و ستون بی انتهای های سفید استتار به سمت مغرب در حرکت بود ناگه ها متوجه شدم که تنها من نیستم که به تماشای فضای نیمه تاریک بیرون ایستدم همه آنهایی که قادر به حرکت بودند پشت پنجرها جمع شده بود هیچ کس معنای واقعی این جنب و جوش را نمی‌دانست تا اینکه هنگام صبح خبرها رسید ما به سوی غرب می‌رفتیم تا حمله دیگری را تدارک ببینیم پس از ماها تحمل فلاکت و بدبختی در غرب باز هم در صدد حمله بودیم و لابد موفق هم میشدیم. حالت افسردگی مشروهان تقریبا به کلی از بین رفت آواز می‌خواندند می‌خندیدند و بار دیگر درباره آینده درخشان گفتگو می کردند. کارهایی که پس از پیروزی در جنگ باید انجام دهند، قصرهای خیالی می آری آلمان برای حمله دیگری آماده می شد. چقدر می توانست ادامه دهد. اواخر بعد از ظهر از بیمارستان مرخص شدم. سوار کامیونم کردند. و یک بلیط به مقصد کوبلنس به دستم دادند. از آنجا به مقصد خانه سوار قطار شدم. از اینکه میرفتم واقعا متاسف بودم درم میخواست شاهد موفقیت این حمله باشم. در کبللنس می بایست به جستجوی مدرسه آdolf هیتلر می پرداختم تا مدارک لازم برای سفرم را تهیه کنم. اما موقعی که در دفتر پلیس ایستگاه راه آهن به گواهی پزشکی هم نگاه کردند بیچون و چرا بلیتم را که به مقصد منیخ بود تایید کردند. سپس مرا به آشپزخانه بردند و جیره سفرم را که عبارت از یک نان بیات سوسیس و چند قوطی کنسرو بود تحویلم دادند گرچه بیشتر محتویات كولو پاشتیام را غذا و گوتی های کنسرو تشکیل میداد اما در افزودن به آنها لحظهای درنگ نکردم برف همچنان به صورت ذرات به هم فشرده میبارید و ها را با پوشش زخیم خود میپوشند و به این ترتیب آثار مرگبار جنگ را در ایام کریسمس از نظرها پنهان میکرد در سالن انتظار بود که از بلنگو خبر پیشروی نیروهای آلمانی از طریق فلات جنگلی آردنز را شنیدیم. در پیین اعلامیه مارش تندی پخش شد و پس از آن یک سلسله شعارهای دیگر هاکی از پیشرویهای هرچه بیشتر. اعلامیه ویژه سال 1940 خبر از تسخیر و تصرف شهرها و کشورها و ارتشها می دسامبر 1944 خبر تصرف روستاها، دهات، انهدام یک تانک، و یا یک گروهان پیاده را به اطلاع می رسند ماها بود که آلمانی ها زیر رگبار گلوله و بمباران قرار گرفته و تقم شکست را می چشیدند. بسیاری از مردم تهاجم اخیر را به فال نیک گرفتند پیشوا کار خودشو بلده سلاح‌های های معجز دشمنان ما را به زانو در خواهد آورد امید سبب میشد که گذشته را فراموش کنیم و فقط به رؤیای پیروزی های آینده بیندیشیم تصور اینکه آلمان هنوز نمرده است و دشمنی که فاجعهی ویرانی شهرها و کشتار زنان و کودکان را به وجود آورده در حال شکست از مهلان است، بسی زیبا بود. در عالم خیال به صورت آمریکایی ها تف میانداختیم و از این همه صمیمیت در ابراز نفرت لذت میبردیم. ما نفرت را به خوبی آموخته بودیم. شپنگوام سوار بر قطار کوبلنس را به مقصد مونیخ ترک کردن. روی در واگانی که در آن نشسته بودم، علامت NFV ویژه معلولین جنگی نزب شده بود. به این ترتیب، برای من به عنوان یک سرباز مجروح صندلی مخصوصی در نظر گرفته شده بود. واگان به اندازه ده بخش یک بیمارستان بوی گند می داد. در چنین حالا هوایی بود که سفر خود را آغاز کردیم. نشسته بر نیمکت های چوبی کوپه های درجه سه، در امتداد رود راین را از میان شهرها و های سوخته از آتش جنگ و دره های آکند از رگبار مسرسل و قرش توبها میگذاشتیم و زمزمه خاموش افکارمان با کوبش چکشی چرخ های قطار سمفونی سرد یأس و انهدام را میسرود در تاریکی کوپه به سختی یکدیگر را تشخیص میدادیم تنها سفیدی نوارهای زخبندی بندی و گچهای شکسته بندی دیده میشد. هر از گاهی کلام یا خمیازی بلندی سکوت را می شکست. وقتی دشبانها برای بازرسی اوراق هویت وارد کوپه شدند، نور چراغهایشان به صورت سربازان افتاد و چشمهای خسته آنها را با پرک زدن از هم گشود. وقتی آنها رفتند، نور زننده چراغها هم رفت و سرنشینان واگانها در جلد خود فرو رفتند. در واگون ویژه معلولین، یک نفر ملادی های ساده ای را با هارمونیکا می نوخت. کم کم با شنیدن صدای هارمونیکا و نواهای آشنا، مجتمع نوارهای زخبندی، گچ و چوب های زیر بغل جان گرفت و تبدیل به انسان شد. همه گی مشغول آواز خاندن شدند و با اینکه که ترانها ساده و پیش پا افتاده بود ولی با سوز و دردی امیق خوانده میشد و روی شنونده تأثیر می کذاشت. حتی ترانهای غم انگیز هم می گاه شور و حالی بپا کند اما آواز این گروه بیان درد و رنج درونی آنها بود و بر زخمهای کهنه نمک می پاشید. و این احساس را در انسان برمی انگیخت که گویی همه برادرند و به یکدیگر نیاز دارند آوای موسیقی هرچند ساده سبب شد که به خود بیایند و برای چند ساعت یا حتی چند دقیقه هم که شده بفهمند که چقدر به یکدیگر دیگر نیاز و تا چه حد باید به یکدیگر خدمت کنند سپیددم هنگامی که به ایستگاه ماسیبت زده ی مونیخ رسیدیم از همه واگان ها تنها واگانی که بوی و و می میداد در ایستگاه ماند مسافرانش پیاده شده و در آن دور و حوالی پراکنده شدند آنها دیشب یکدیگر را یافته و تمام شب را با هم گذرانده بودند اما فردا شاید بیگان هابی اعتناع موجودیت یکدیگر در خرابه از کنار هم باگذارند مونیخ های بیشتری را تاب آورده بود بر گستری ویران ها افزوده شده بود اینجا و آنجا های قدیمی در حرکت بودند زنهای زبرزرنگ و مشغول خرید بودند و پیرزنها و پیرمردهای مستمری بگیر مثل همیشه قرغور می می‌کردند. نه از جنگ و های هوایی بلکه از رقیق بودن آبجاها و کمبود توتون مرقوب پیپ شکایت داشتند شهر مونیخ زیر پوشش زخیم خرابهها پنهان شده بود در اشتاخوس و میدان سندلینگر درختان بلند کلیس نصب کرده بودند. ولی البته از چراغانی خبری نبود. بیشتر کلیساها و بناهای تاریخی شهر با سالها قدمت ویران شده بودند. پاکسازی و جمعوری زبالها آغاز شده بود. مجتمع آپارتمانی ما تنها ساختمانی بود که در میان خرابه اطراف سر پایی زده بود. آپارتمانی که در آن مادری با ناامیدی انتظار فرزندش را می کشید یکی دو روز بعد همه چیز چنان عادی بود که انگار هیچ وقت از آنجا دور نشده بودم اوته گذشته خبردار شدم که برادرم در رمانی به وسیله یک جنگنده روسی کشته شده است مادرم این خبر را تا زمانی که دوباره به خانه برگشتم از من پنهان کرده بود که اسف 1944 نه تنها تعطیلاتی بیبرکت و پر بود بلکه خبر مربوط به عدم موفقیت حمله مشهور اردنز را نیز به همراه آورد سال جدید با آخرین سخنرانی ایتلر آغاز شد بر روی ویرانهای آلمان شهرها و جادههایی خواهم ساخت که دنیا تاکنون نظیر آن را ندیده است